به سوی نور قسمت اول بسم الله الرحمن الرحیم سلامون علیکم خدمت جناب آقای عدل محمدی هستیم آقای عدل محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما علیکم و سلام و رحمت الله جناب آقای عدل محمدی در کتاب مزامیر داوید یا همون کتاب زبور داوود نبی ما ای داریم در مزمور 108 آیه 13 آم که فرموده ما را از دشمن امداد فرما زیرا که مدد انسان باطل است حقیقتا من بعد از مطالعه این آیه خب داشتم یه مقایسهی میکردم با فرهنگ ایران زمین که خب برحال به نوعی از بچگی به همه ما توی این فرهنگ خورانده شده که اگه خوردی زمین بگو یا علی اگه خاصی بلند شی بگو یا علی خاصی وزنه به زنی بگی یا ابلفض اما وقتی چنین فرهنگی رو که ما تو ایران بهمون به داده شده رو در برابر این آیه از زبور قرار میدیم که فرموده مدد انسان باطل است دوچار تناقض میشیم من میخواستم ببینم نظر شما پیرامور این موضوع چیه و مسئله مدد خواستن از غیر الله و یا مدد خواستن از انسان رو شما در آیات قرآن کریم چطور دیدید و اگه لطف فرمایید کنید. استعامه کنم بسم الله الرحمن الرحیم ببینید برادر بزرگوار من شناخت مرحله اول آزادی هر انسانی برای اینکه بتوانیم ریشه خبیثه دکانداران دین رو بزنیم بایستی به این کلام الله متن مقدس کلام الله تعالی باعثی اعتصام بجوییم متمسک بشوییم در سوری مزمل آیی 20 قرآن کریم قال الله تعالی فقر او ما تیسر من القرآن هر چه یسر می شود قرآن را بخوانید بخانید براسی مذهبیون ما کلام الله را می خانند آیا مطالعه می کنید کلام خدا رو متروک گذاشتیم و به یک مش موهمات و خرافات عباطیل مذهبی دست آختیم که اساساً با شریعت عالی اسلام با متن مقدس قرآن کریم و کتب من قبل 100 درصد در تضاد است برادر بزرگوار عزیزان خواهران و برادران گرامی در مورد خواندن غیر الله مطالبی رو مطرح میکنم امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره من سوره اعراف آیه 194 قران کریم رو پیرامون این مهم در مورد خواندن غیر الله براتون مطرح میکنم بله سوره اعراف آیه 194 فرمودید بله بله بله خواهش میکرم. الله میفرماید کسانی را که به غیر از الله به فریاد میخوانید بندگانی مانند شما هستند عزیزان توجه کنید کسانی را که به غیر از اللا به فریاد میخوانید صدا میزنید بندگانی مثل شما هستند اگر راست میگویید آنها را صدا میزنید تا شما را اجابت کنند ببینید دوستان گرامی واجی تدعون دعوات خواندن صدا زدن عزیزانی رو بدانید که اکثریت این ترجمه هایی که ما در ایران داریم از فیلتر جامعی مدرسین حوزه علمی قوم و اصطلاح فقه های فقه ها و علماء جامو شرایط رد شده است ببینید دوستان گرامی توجه کنید که اومدن واجی تدعون دعوه و خواندن رو به عبد، به عبادت اومدن در واقعیت اهم چه خواهی کردن؟ تغییر دادند یعنی کلام الله رو تغییر دادند قلب کردند کتمان کردند پوشندند در که واجی تدعونه به معنای خواندن است به معنای صدا زندن است الله می کسانی که به غیر از خدا صدا می زنید بندگانی مثل شما هستن آقا عزیز من برادر من عزیزش تشیع من عزیز تسنن من نگاه بکن جامعه شرک زدی خودت رو برو نگاه بکن نگاه بکن که تو داری غیر الله رو داری صدا میزنی میگی یا محمد رسول الله یا مهدی ادرکنی یا ابوالفض یا فاطمی زحرا یا شیخ قادر گیلانی از اونها مدد میخواهی حاجت میخواهی شفاعت میخواهی عزیز من قرآن کریم داره میگه اینهایی که داری صداشون میزنی بندگانی مثل شما هستند حسن، حسین، عب الفض، محمد، موسی ایسا بنده مثل شماست داری اون رو صدا میزنید اللهم میفرمایید اونایی که دارید صداشون میزنید بایدید جواب شما رو بدن آیا اجابتتون میکنند؟ علامت سوال، علامت تعجب آیا جوابتون رو میدن؟ یعنی شما میفرمایید که در اکثر ترجمه هایی که از قرآن کریم وجود داره در ایران واژه تدعونه رو طوری ترجمه کردن که انگار نوشته شده تعبودونه درسته به این ترتیبی؟ س... بله بله برادر بزرگوار این دقیقا به این صورته اکثر این ترجمه هایی که شده اومده واژه تدعونه تدعونه از دعوه میاد دعوه یعنی از خواندن صدا زدن دعا درسته همه که ما داریم می... میگیم یا الله یا الله یا حرف نداست تنسته. الله هم مناده داریم داریم صداشون میزنیم الله رو یک مسئله رو باز من خدمت شما و سایر عزیزان برادران و خوهرانی که صدای ما رو میشنوند ببینید سوری مؤمن یا سوری قافر آی شست رو نگاه بکنید الله میفرماید و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید مرا صدا بزنید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانی که از عبادت من کبر می‌ورزند به زودی خار در جهنم درآیند. اینجا این واژه ها رو نگاه بکنید برادر گرامی. وقال ربکوم تدعونی استجب لكم. واجی دعوه اینجا به معنی خواندن و صدا زدن. بعد ادامه‌ی این آیه: الّذین یستكبرون عن اینجا واجی عبادتی از عبد بودن این به معنای عبادته به معنای پرستش محصوب میشه ببینید من توصیه من اینه که اولا قرآن کریم رو مطالعه بکنید کتب منقبر رو مطالعه بکنید الان با توجه به این که ما نرم افزار های خوبی رو داریم کتابی هست زیر عنوان المعجم المفخرست نویسنده محمد فواد عبدالباقی مسیح کشف آیای قرآنیه شما میتونید یک واژه رو بگیریم مثلا واجه دعوه رو کلیه ی آیات رو مرتبط با اون واجه آدرس آیات دقیقاً برات میاد شما این آیات رو برو مطالعه بکن دقیقاً داری میبینی که دقیقاً داری نگاه میکنی که الله خواندن غیرش رو داره نفی میکنه یک فعل حرام میدونه یک فعل باطل تلقی میکنه دوستان گرامی ببینید سوره حج آیات 73 الی 74 قرآن کریم رو ملاحظه بفرمایید ای مردم مسئلی زده شد پس بدان گوش فرا دهید کسانی را که جز الله صدا میزنید میخوانید هرگز حتی مگسی نمی آفرینند هر چند برای آفریدن آن اجتماع کنند و اگر آن مگس چیزی از آنان برو باید نمیتوانند آن را بازپس گیرند طالب و مطروب هر دو ناتوانند ارزش الله را چرا که در خروعوس نشناختند در حقیقت الله هست که نیرومند شکست نپذیره در همین آیه یعنی سوری حج آیه 73 و 74 دقت کنید دوستان گرامی واجه تدعونه اشاره شده یعنی خواندن صدا زدن الله داره میگه آقا اون کسایی که داری صداشون شون میزنید نمیتونن مگسی رو بیافرینن عزیز تشیو من عزیز تصنن من شما که داری میگه یا علی یا فاطمی زهرا یا خسین از غیر خدا مدد میخواهی شفاعت میخواهی اینجا داره میگه اون کسایی که داری غیر خدا غیر الله داری صداشون میزنید داره اشاره میکنه اینها مگسی رو نمیتونن خالق بكونات با اگر این مگس از اونها را برو باید نمیتونن ازش بگیرن خب این پیام الهیه این پیام روشنگر توحیدی رو نگاه بکنید دوستان گرامی و پیام خیلی صریحی هم هست آیه از محمدی کسی نمیتونه اینو هاشا بکنه ماشاءالله برادر گرامی ببینید دوستان گرامی این رو توجه کنید که از سطر سطر آیات قرآن مبین بوی توحید به مشام برسه پیام الله رو به سیم مطالبه کن زیر بنای اعتقادی به ایدئولوژی که خودت رو بر اساس رحنمودهای الله تعالی قرار بدی بعد سوره ای رو من اشاره می کنم سوره بغره آیی 186 برادر بزرگوارمون علی آقا این آیه رو نگاه بکنید عزیزان نگاه بکنید سوره بغره آیی 186 بره 186 بره الله می به هرگاه، بندگان من از تو در باری من بپرسند بگو من نزدیکم نمیگه من دورم میگه من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که را خب این پیام یعنی چی ما من آیه رو از خود قرآن کریم خدمت شما و اساییر عزیزان میارم سوره حدید آیه 4 رو اینه که فرمودید از سوره بقره آیه 186 خیلی جالب بود از این نظر که فرموده که دعای آن کسی که من رو بخواند در جای اجابت می‌کنم ماشاءالله پس, پس این ارتباط بی‌نهایت ارتباط مستقیمی و نیاز به هیچ واسطی نداره ماشاءالله بله بله ولی دقیقاً تمام قرآنی رو داره میگه کتب من قبل قرآن کریم داره پیام توحیدینه که میگه مستقیمن و بدون واسطه من آیاتی رو میرم عزیزان اللایی که داره میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم سوری قاف آیه شانزه قرآن کریم سوری حدید آیه چهار قرآن کریم اللا میفرماید و او با شماست هر کجا باشید و الله به آن انجام می دهید بیناست خب الله تعالی که از رگ گردن به ما نزیکتره صدای ما رو میشنبه میبینه احاطه داره بر ما اشرافیت تام روی ما داره وقتی که الله تعالی داره میگه مستقیما با من صحبت کن من پاسقوی دعاهای شما هستم آیا ما بایستی به دنبال واسطه بگردیم به دنبال و، امامزاده و سقاخانه برویم خب این تفکر رو الله مردود میدونه درست ببینید برادر گرامی آیه قرآنی هم من خدمتتون میارم در سوره احقاف آیات 5 و 6 قرآنی کریم زالترین ها در پیشگاه الله تعالی اینجا دقیقا حوویداز مشخص کرده تصمیم کرد الله را بلالیمین برای ما الله میفرماید و کیست گمراه در از آن کس که به جای الله کسی را صدا میزند که تا روز قیامت او رو پاسخ نمیده و آنها از دعایشان بیخبرند و چون مردم محشور گردند دشمنان آنان باشند و به عبادتشان این کار برزند خب این پیام قرآن چی داره چه رهنمودی رو برای ما داره داره میگه گمراه در این انسان ها اینه که دارن غیر الله صدا میزنه میگه یا حسین یا عب الفض یا محدی عدرکنی یا محمد رسول خدا یا شیخ قادر گیلانی خب از اینا استقاسه میخواهد مدد میخواهد یا علی مدد داره میگه خب داره قرآن الله تعالی داره اشاره میکنه که میگه گمراهه زاله گمراهه این گمراهی نیست به نظر شما؟ وقتی اصلا. که ما الله تعالی رو گذشتیم کنار جامعه شرک زدی ایران رو شما برید نگاه بکنید برادر گرامی این به جای اینکه بگه الله حافظ میگه علی نگهدارت باشه درست. به جای اینکه بگه یا الله مدد میگه یا علی مدد آقا علی ابن عبی طالب رو اگر شما قبول دارید خب عزیز من برادر گرامی علی اومده تو رو متوجه الله بکنه نه متوجه قبر خودش حال من عزیز من برادر گرامی در مورد همین اینایی که نماز می خونند حالا شما نگاه کردی برادر گرامین نماز می هر روز داره میگه سوره حمد میاد میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین تا بله بله بعد میگه یاک نعبد و یاک نستعین بعد میگه یا علیم مدد من میخوام ببینم که معنی این یاک نعبد و یاک نستعین یعنی چی برادر گرامی الله در اینجا داره اشاره داره میکنه میفرماید تنها تو را می و تنها از تو مدد میخواهم خواهم استعانت می خواهم. یعنی مدد خواستن مدد خواستن استعانت خواستن باعثی فقط از الله رب العالمی باشه و لاغیر من این رو تأکید می کنم برادر گرامی برادر بزرگوارم این رو اشاره می کنم این آیاتی که در قرآن کریم هست آیات متعددی هست من یک نمونه باز از قرآن کریم آیه رو میارم سوره فاتر آیات سیزده الان چهارده برای اینکه که صحبت های خودم رو من تمام بکنم البته آیات متعددی هست شما میتونید از طریق همین اینترنت از طریق همین کامپیوتر نرمحصارهای قرآنی هست برید بررسی کنید آقا مطالعه بکن. شما که میرید به قول معروف سه ساعت میشینید سریال, سریال های تلویزیونی رو نگاه میکنید میرید سینما میشینید به قول معروف در محافل به قول معروف خوز میکنید با همدیگه یک سری خوزعبلات و لاتائلاتی که بعضی ها محترم میکنند خب به جای این آ یک بار این اگر اعتقاد داری به الله اعتقاد داری اگر اعتقاد به معاد داری آها این کلام الله رو مطالعه بکن خودمو بس پاسوقوی اعمال و رفتار خودت باشی این رو بدونید برادران خواهران عزیز فردا قیامت با متن مقدس کلام الله مواخذه میشید نه با لا تا الات مذهبی نه با خوزه ابلات مذهبی اساس درس و بس متن مقدس هست نه خوز ابلاتی که به اباطیل مذهبی که شما دارید میبینید که رواج داره که ساخته و پرداخته ی ذهن مسموم و متعفن مشتی آخوند خودکار و دکاندار تیم که اومدن دین رو ابزار ارتزاق و ستم و خرافه پروری قرار دادن من این آیی رو باز برادر گرامی وقت شریف شما و عزیزان رو من نگیرم سوره فاطر آیی سیزم و چاردن را میگم ختم کلام بشه خواهش میفرماید و کسانی را که به جز الله صدا میزنید مالک پوست هسته خرمایی نیستند برادر نگاه بکنید آه. پیام رو نگاه بکن یا علی یا حسین یا عبالفز باب الحوائج رو نمیدونم حضرت عبالفز میدونه غیر الله میدونه از غیر الله مدد میخواد گوش بکنید الله میفرماید و کسانی را که به جز او صدا میزنید میخانید مالک پوست هسته خرمایی نیستند اگر آنها را صدا بزنید دعای شما رو نمی شوند. ببین بنابرای در چقدر قشن پیام رو نگاه بکنید و اگر بشنبت اجابتتان نمی کنند. و روز قیامت شرک شما رو این کار می کنند و هیچ کس جز الله تو را خبردار نمیکنه کنه خب این پیام توحیدی سراحت که این آیه داره خیلی واقعا انبال است سقیمن و بدون واسطه و یک مسئله رو باز اشاره می برادر گرامی عزیزان شنوندگان گرامی مسئله رو توج... مورد توجه قرار بدید تمامی دعاهای قرآنی با های ربنا اللهم و رب شروع میشه یعنی مستقیما با الله رابطه برقرار کن دیگه به دنبال واسطه نرو نکته جالبی بود خیلی ممنون آیاتی رو من ایشالله در فرصت آتی در خدمت شما عزیزان باشم پروردگار را بیداری به حرکت به اراده را در پرتو پرامین روشنگر خیش بر همه مزلومان و ستملیدگان انایت فرما یارب چین باد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته تشکر می میکنم از شما جانباقی عدل محمدی پیام کتاب مقدس زبور هم دقیقا در قرآن کریم هم اکو شده تکرار شده و ما تشکر می کنیم از شما بابت اینکه این آیات رو برای ما نقد کردید امیدوارم که دوستان هم پیگیر بشن و بیشتر شخصا به مطالعه آیات و تحقیق و تحلیل موضوع بپردازن خیلی تشکر می کنم از شما استدعا می کنم برادر گرامید خواهش می کنم پناه الله را بلالی می باشید